سلام دوستان من امیر یاری هستم و شما الان دارین به پادکست دیجی میج گوش میدین. تو این پادکست من معمولا سعی میکنم موضوعاتی رو <reco> که <Christ> مربوط به <to> دنیای عکاسی دیجیتال هستش هر موضوعی که به نظر خودم جالب میرسه رو فیلم و به صورت پادکست با شما در میون بذارم. بعضی وقتا فقط یک خبره، بعضی وقتا بررسی عکسای اینستاگرام هستش، عکسایی که توی اینستاگرام معروف شدن شدند، رو بررسی میکنم و بعضی وقتا هم یک نکته آموزشی رو در اینجا میگم. اما امروز میخوام درباره یک مسئله خیلی مهم می صحبت بکنم. یک خبری که به نظر خبر کوچیکی بود ولی برای من اهمیت خیلی زیادی داشتش. خبر خیلی کوتاه بودش، اینکه گفته میشد. قرار هستش که یک شرکتی به نام شیامی که یک شرکت چینی هستش بیاد و شرکت گوپرو رو به طور کامل و یک جا بخره همین چند هفته پیش یک دوربین جدیدی به بازار داد به نام هیرو یادمون باشه که هیرو بدون عدد چون که گوپرو هیرو چند تا دیگه هم داره که شماره دارن مثلا گوپرو هیرو 4 بود، هیرو 5 بود، هیرو 6 بود دوربین هایی که خیلی امکانات بالایی دارن اما یه دونه دوربین زدش به نام گوپرو هیرو این گوپرو هیرو ارزون ترین دوربین سری هیرو هستش که گوپرو تولیدش کرده این رو داد و خیلی هم تبلیغات روش کرد و خیلی هم سرساده کرد و خیلی هم در موردش حفظ زده شد من خودم این رو توی سایت های مختلف براش بررسی نوشتم توی نورنگار توی سایت خودم و گفتم که چه امکاناتی داره و خلاصه که خیلی دوربین خوبی بودش به نظر میرسیدش که گوپروز شرایط بدی نداره یعنی به نظر میواد که خب یک محصول جدیدم داده و شرایط خوبی داره این be دو سال پیش یعنی سال 2016 اومدش و یک پهپاد معرفی کرد همون هلیشات به نام کارما اون موقع خب GoPro فقط دوربینای اکشن می‌زد همین دوربینایی که ضد آب بود و می بردن زیر آب و اینها این اومدش و یک پهپاد درست کرد می‌خواستش وارد بازار پهپادا بشه من یادمه که اون موقع سردبیر نورنگار بودم سایت نورنگار و اونجا کلی بررسی و کلی فیلم و اینها در مورد کارما منتشر کردیم و اومدش گفتش که این خیلی کارا میکنه و ال و بلو خوب میپره و خیلی باتری خوب داره و خلاصه خیلی سر صدا کردش که ما اینو داریم میدمش بیرون اما خیلی طولم کشیدش که این در واقع کار ما وارد بازار شدهش. چون که اون پیش تولیدش فکر می کنم نزدیک هفتش ماه یک سال فقط هی ویدیو میداد و میگفتش که ما اینو می وارد بازار بکنیم به محض اینکه این پرنده وارد بازار شدش و کاربران رو دست گرفتن توی چند هفته اول تقریبا چیزی نبودش که دیگه به این کارمان نگن یعنی هر کسی که تونستش هر بد و بیرایی که تونستش به این گفت به خاطر اینکه کارما خیلی بدی بودش گزارش‌هایی داشتیم که این میره بالا و اصلا گم میشه گزارش‌هایی داشتیم که جی پیسش اشتباه کار میکنه و جای فرود این اشتباه است گزارش‌هایی داشتیم که اون بالا با تمام میشه سقوط میکنه میافته پایین خلاصه که انقدر گزارش‌های بدی در مورد کاروا اومد که اون موقع خب یک رقیبی هم داشتش رقیبش همون دیJهایی بود که همون فانتوما ها و اینها رو درست میکنه. همه این رو می آوردم میذاشت جاله دیJ و رسم به کارما میخندیدن و مسخرش میکردن. انقدر این اتفاق بد بود که گوپرو رو یه چند هفته بعد از اینکه کارما وارد بازار کرد بالااف اعلام کردش که همه این پهپادارو رو جمع میکنه و برای اینکه بتونه تمرکز بیشتری داشته باشه روی دوربین اکشن، یعنی روی همون دوربینه زده آب خودش این بازار پهبادار رو برای همیشه ترک میکنه و خداحافظی میکنه و میره اما توی این یکی دو سال هم خیلی وضعیت گوپرو وضعیت خوبی نبودش اگر که نمودار رشد سهام گوپرو رو نگاه بکنیم از تقریبا عواست 2014 یعنی همون هولوهاش اون اتفاقی که برای کارما افتاد این شرکت به شدت سهام سقوط کرده و خیلی وضعیت خرابی داره یعنی الان تقریبا به پایین ترین مقدار خودش رسیده این شرکت که اون روزها توی روزه اوج خودش قیمتش و ارزشش به 10 بیلیون دلار رسید دقت بکنید عدد رو شرکتی که فقط دوربینه اکشن تولید میکنه این دوربین کوچولارا تولید میکنه 10 میلیارد دلار برآورده قیمتش بود این شرکت ارزشش پی اون روزها هر یک سهمش که سهماشو که میفروختش برابر 90 دلار بودش امروز تو 2018 شده 5 دلار یعنی تقریبا با سر اومده پایین و شرکتی که 10 میلیارد دلار قیمتش بودش الان اومده اخبار غیر رسمیه ولی گفته میشه که شرکت شیامی قیمتی رو که پیشنهاد کرده برای خریدش یک میلیون دلاره یعنی یک دهم ده قیمتی که دو سال, دو سال و نیم پیش این شرکت قیمت داشته یک دهمش ده رسیده الان نیک بودمن مدیر شرکت شرکتگوپرو اومده و البته خودش تکتا انداخته گفته به منظور دستیابی به موقعیت های بهتر حاضر هستش که روی اقدام این شرکت با یک شرکت بزرگتر فکر کنه یعنی چی؟ یعنی اینکه گفته اگه یک نفر به ما پیشنهاد بده و موقعیت خوبی داشته باشه باعث بشه که ما رشد بکنیم ما روی فروش خودمون به اون فکر کنیم این فکر کردنش اینجوری بوده که مدتی قبلم دیجیای اومد گفتش که بیا بفروش به من بعد مذاکره کردن بعد به نتیجه نرسیدن دیجیای پاش کشی عقب و رفت بعد از اینکه رفتش شرکت شیامی اومدش جلو شیامی یک شرکتی هستش که اسمارت فون می‌سازه، ساعت هوشمند میسازه لپتاپ، دوربین، دوربینه اکشن کوچولویی میسازه که اصلاً در حد و اندازه های GoPro نیستن ولی خب شرکتیه که اینها رو میسازه و خوبم داره کار میکنه و توی چین خصوصاً خیلی اعتبار داره، توی دنیا هم اعتبار داره چیز یعنی برند بدی محسوب نمیشه این برند اومده گفته که بیا و این شرکته رو به من بفروش. خیلی جالب هستش که به محض اینکه خبر خرید شیامی منتشر شده یعنی فقط خبرش اومده بیرون که گفتن شیامی میخواد گوپورو رو بخره 9 درصد رفتش روی قیمت سهام گوپورو یعنی صرف اینکه قرار یک شرکت چینی بیاد شرکت گوپورو آمریکایی رو بخره 9 درصد رفتش روش خیلی ها اصلا دلیل افت قیمت گوپرو همین دوربینه شیامی بوده چون دوربین بسیار ارزان و قیمتیه البته کارایش هم بد نیستش ولی قیمتش خیلی خیلی ارزونه و خیلی هم میگن که اصلا همین دوربینا با که قیمت گپور افت بکنه. و الان همون شرکت اومده و داره شرکت گپور رو که امریکایی هستش میخره و برای همیشه میبره چین. یادمون باشه که همین یکی دو ساله پیش بودش که شرکت حاصل بلات فکرو بکنی برند کمی نیستش حسل بلاد. شرکت حاصل بلاد رو شرکت DJI چینی، که همین پهپاده رو درست میکنه اومدش به شرکت حسل بلاد رو با صد خوردهی سال قدمت توی عکاسی به طور کامل و یک جا خرید و برای چین شد الان این شرکت شرکتی که با اون عظمت بوده که اسمش اعتبار اکاسیه الان رفته و برای چین شده این احتمالاً به نظر من من فکر میکنم که شکعاورترین خبر خرید و فروشی که توی این چند وقت چندیدی بعد از اون خبر خریده حسل توسط دیژی احتمال خیلی زیاد خبر خرید گوپرو توسط شیاه میخواهد. You still believe I tried And maybe we could be a symphony And maybe I could learn to play You could write that story While I just write the way But life is never like that But life is never like that She took In I no. like like like اگرچه این معامله هنوز انجام نشده اما بالاخره حرفاش هستش و همونطور که میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها بالاخره حرفاش در اومده اون شایهاتش در اومده اون وبسایت سایت اینفورمیشن که این خبر رو منتشر کرده گفته که به احتمال خیلی زیاد این خبر قطعی هستش و خب دیگه باید بالاخره قید گوپرو رو بزنیم نمیدونیم که اصلا با همین اسم منتشر میشه یا اسمش رو هم عوض میکنن برحالا میدونیم هر اتفاقی براش میفته اتفاق خوبی باشه از اینکه که پادکست دی جی رو دنبال میکنین و احیانا این پادکست رو به دوستان خودتون و به کسانی که علاقه مند هستن به دنیا یک کاسی معرفی میکنین از شما ممنونم. من امیر یاری هستم از وبسایت digimage.ir. is right.